زمن توصیه خود و نمازگذاران محترم به رعایت تقوا و تمسق به حبل الله المتین و حفظ وحدت و همدیلی امیدوارم خداوند متعال به هممون توفیق دهد تا نعمتهای خداوندی را شکر بگذاریم نسبت به همدیگر خیرخواه و مهربان و دلسوز باشیم از اذیت و آزار یک دیگر دوری بجوییم و در کارهای نیک و پسندیده با هم تعاون و همکاری داشته باشیم از اصلی ترین نشانه اهل ایمان مؤمنان واقعی مؤمنان راستین سپردن امور به خداوند متعال و راضی بودن به قضا و تقدیر الهی است چنین افرادی اگر دوچار شکست در زندگی شوند هرگز معیوس و ناامید و سرخورده نیستند همیشه و همواره به رحمت خدا امیدوارن و مفقن آنچه پیش آمده و اتفاق افتاده بر اساس حکمت خداونندی است و شاید خیر من در آن باشه. و اگر چنان چه موفقیتی به دست آورد؟ اون را نتیجه یا هنر و دانش خود نمی دونه بلکه آن را از لطف و فضل الهی می داند و خداوند متعال بر آن توفیق شکر می زندگی بندگان با ایمان خدا، انبیا و مرسلین اصحاب کرام، بزرگان و تابعین شر سرشار از این احساس‌های بسیار بسیار پاک و احساس‌های بسیار همراه با یقینه یکی از بزرگان به نام عامر ابن عبد قیس از کبار تابعینه که شعب الاحبار در باره او میگوید هو راهی به هاویه الامه عامر ابن عبد قیس از عبادتکاران بنام این امته میگوید سه آیه در قرآن مجید تکلیف من با بندگان خدا رو اوشن کرد که من دیگر به کسی دل نبندم فقط به یک جا امیدوار باشم و دل ببندم خیلی مهمه انسان به این درجه از یقین و باور و احساس برسه اونم در پرتو آیات قرآنی و راهنمودهای الهی این سایه چیه یک آیه 80 107 سوره یونس و اي الله بضر فلا كاشف له الا هو واي يمسك بخير فلا راد لفضله خداوند متعال خطاب به همه منو شما میفرماید اگر خداوند متعال به تو ضرر و زیانی برسانه حالا ضرر جانی باشه فرزندی جسمی بیماری باشه زرار مالی باشه دشمنی کسی باشه میگه هیچ احدی اون را برطرف نمی کنه. فقط خدا فقط او یک و این یورید که بخیرین اگر او به تو اراده خیر داشته باشه بخواد خیری به سوی تو بکشانه فلا راد دل فابله هیچ کس نمیتونه فضل خدا را که همون خیر باشه خیری که به سوی تو روانه میکنه کسی نمیتونه اون را برگردونه پس بنابراین تو همه ای توجهت به خدا باشه و هیچگاه امیدت به غیر خدا نباشه همه من شما این گناه باشیم یک دوم در سوره فاطر ما یفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم هر در رحمتی که خدا برای مردم بوردگان خودش باز کند هیچ کس نمیتونه اون در را ببنده هیچ کس اون در را نمیتونه ببندد و اون که خدا ببنده و اون در را که خدا ببنده هیچ کس نمیتونه اون در را باز کنه زیرا خدا مقتدر و با حکمت است آیه سوم امام دابته فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها كلهم فی کتاب مبین آیه شش سوره یهود هر ای در زمین انسان و غیر انسان رزق و روزیش فقط بر خداست خدا تکفل کرده رزق و روزیش موجوداتی که در دریا زندگی می‌کنند موجوداتی که در هوا زندگی می‌کنند موجوداتی که روی زمین حرکت می‌کنند همه دابت الدابت الارض رزق و روزیشون با کی با خداست ویعلم و مستقرها و مستودعها. امیدن قرارگاه دائمی و قرارگاه موقتیشان. خدا میدونه فلان موجود در کجاست؟ در کدوم ناحیه از کره زمین زندگی میکنه؟ او را میدونه رزقش را میرسانه. کلهم فی کتاب مبین. همه اینها مستوره و ثبت در کتاب آشکار. بسیاری از ما همین که با یک مصیبتی روبرو می شویم دست از پا گم می کنیم دوشار خود, خود باختگی می شویم فرزن اگر پزشک به کسی گفت که بیماریت علاج ناپذیره علاج ناپذیره در جا رنگ از چهرهش می بازه نصف بدنش زود میشه و گاهی خیلی اتفاق افتاده همین که پزشک به گفته تو کرونا داری و بستری های کرونایی در بیمارستان میبینی که همه زیر دستگاه کنفوس میکنن میبینه سکته میکنه این نتیجه نبود اعتماد و توکل بر خداوند متعاله که زنده رو مرده میکنه و جوان با قدرت و با نشاط را از پا در میاره این بود اعتماده بسیاری هستن در زندگی خودش شکست میخوره یک کاری شروع کرده شکست میخوره زرر میکنه دست از پا گم میکنه به جای اینکه به رحمت خدا امیدوار باشه به جای اینکه فعالیتش را از شروع بکنه با جدیت بیشتر با امید بیشتر با تلاش گسترده تر میره خود را تسکین میدهد با مواد مخدر پای منقل تریاک و حروعین قرار میگیره میگره من دیگه اعصابم خورده خمیره برم خودم را آرامش بدهم بیشتری کسانی که دستخوش اعتیاد میشون نتیجه همین یعص و است. نتیجه زعف ایمانشون هست که از این گونه زررها و زیانها و ها دوچار این خودباختگی ها میشون ولی خداوند متعان به همه ما دستور میده اگر دشمن در برابرت قرار گرفت بیعتنا باش خداوند پیامبر اکرم علیه و السلام فرمود فا هم از اونها روی بگردان بشه رویعتنا کن و توکل الله و کفا بالله وکیلا با خدا توکل کن و خداوند متعال به عنوان وكیلا. شفایت توست وکیل چه معنا داره؟ یکی از نامهای مقدس خدا الوکیل. به خاطر داشته باشیم الوکیل یعنی کسی که انسانها در سختیر به او روی می آورند و امرشون به او می سپارند من یتوکل علیه به به او می گویند وکیل باز هم خدا به پیامبر فرمود اگر همه از تو پشت کردند همه از تو روی گرداندند باور کن که خدا داری فان فانتولوا فقل حسبنا الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم اگر همه از تو پشت کردند بگو حسبنا الله برای من خدا کفایته من خدا داشته باشم کافیه برای من لا اله الله نیست معبودی در عالم جز او بر او توکل نمودم و او پروردگار عرشه صاحب عرش عظیمه داستان انبیاء را وقتی نگاه میکنیم چقدر زیبا و شکوه منده. چقدر زیبا و شکوه منده. حضرت ابراهیم نبی علیه الصلاة و السلام وقتی همه دشمنانش و مخالفانش دور او جمع شدن که او را در آتش بیندازن چه گفت؟ آیا آمد از اونها التماس بکنه؟ آیا به اونها هر هرچی شما گفتی من تأیید میکنم؟ آیا به اونها گفت حق با شماست؟ از موضع خودش عدول بکنه گفت نا گفت قف حسبی الله و نعم الوکیل حسبی الله و نعم الوکیل حضرت رسول علیه الصلاة والسلام فرمود گفته دو خلیل خدا یعنی ابراهیم و محمد علیه السلام وقت در اوج شدت این بود ابراهیم وقتی خواستن او را بیاتش بیاندازن گفت حسبی الله و نعم الوکیل حضرت محمد وقتی که گفتن که ان الناس قد جمعو لكم وقشهم فزادهم ایمان و حسب الله ونعم الوکیل حضرت محمد یارانش وقتی بهو گفتن دشمنان در برابر شما قرار گرفتن و حسب الله ونعم الوکیل خدا کفایت مانست بهترین کفایت کننده خداوند متعال حضرت ابراهیم فرزند صغیر شیرخارش اسماعیل و هاجر را از شام از سرزمین بابرکت و نعمت حرکت داد به سمت مکه مکه در اون روز آبادی نبود گاهی بعضی افراد ره گذر اونجا چادر می و می رهدند اونها را نزدیک باقی مانده آثار باقی مانده کعبه هم ویران شده بود در فاصله 100 متری کعبه ولی دقیقا نمی تونم بیدن اونها را قرار داد. یک مشک پر از خورما و یک مشک پر از آب کنارشون قرار داد خواست برگرده خودش هاجر و فرزند شیرخارش اونجا بگذاره وقتی حرکت کرد هاجر دوید گفت، ابراهیم کجا میره گوه برمیگردم به شهر خودم برمیگردم عجب ما را اینجا گذاشتی شهر بی آب و علف نه انیسی نه جلیسی هیچ چی اینجا نیست. نه. نه آبادی ما را اینجا میگذاری؟ دو بار سه بار تکرار کرد. ابراهیم سکوت کرد. جواب نداد. بار چهارم حاجر گفت که بگو آیا خدا به تو امر کرده دستور داده که ما را اینجا بگذاری و بروی؟ یا سلیقه و رعی و نظر خودیته گفت خدا به من دستور داده؟ گفت دستور خداسته. گفت اگر دستور خداست ان الله لا یغوی عنا خدا ما را میکنه به بپرما برو خدا ما را ضایع میکنه مدتی گذشت آب تمام شد خرما تمام شد بچه از تشنگی نزدیک جان بکنه خودش از تشنگی نزدیک بیفته رفت به نزدیکی کوه صفا بالا رفت این طرف اون طرف نگاه بکنه کسی انسانی موجودی آبی وجود داره چیزی نبود آمد به کوه مروه بالا رفت میگه کرد چیزی نبود هفت بار این حرکت انجام داد که سعی الان هفت مرتبه هست بین سوا و مروه آخرالعمر وقتی بر کوه مروه قرار گرفت یک صدایی شنید همهمه ای شنید به خودش گفت صحیح سکوت کن که یک چیزی هست دوید به همون سمت آواز دوید دید کسی است با بال خودش یا با پای خودش زمین کاوش میده خداوند متعال فرشتهی جبریل امین را فرستاد که حفر کنه اونجا و اون چشمه زمزم جاری بشه دید آب فواره کرد از ترس این که شاید این آب تمام بشه و هرز بره و چیزی دستش نگیره آمد دور آب صد گذاشت با خاک صد گذاشت که آب جمع بشه مقداری آب برداشت حضرت رسول علیه صلات و السلام در این حدیثه که یرحم الله ام اسماعیل لو ترک زمزم لکانت عين معین خدا اسماعیل را رحمت کند هاجر را رحمت کند اگر زمزم را به حال خودش بین که به جوش برود تا روز قیامت این چشم روان بود ولی آمد دورش حصار کرد یک جا در جا موند مثل یک چاهی الان آب هست که آب برداشتو؟ ابراهیم وقتی که رفت بر سنیه بر یک در قرار گرفت بر یک سکوی بلندی قرار گرفت رو کرد به خانه کعبه به جای خانه کعبه دعا که ربنا اینی اسکنتو من ذریتی بوادن غیر دی زرع عند بیتک المحرم خدایا من خانواده خودم را در یک در که نه آب و علف داره در کنار خانه‌ای تو قرار دادم ساکن کردم ربنا لیقیم الصلاۃ خدایا من امیدوارم که اینها نمازگزار باشن اینها افراد نمازگزار باشن خودشه فرزندانش فاجعل افئده من الناس تهوی اليهم دل‌ها رو به اونها علاقمند بگردان و هم من الثمرات لعلهم یشکرون و رزق روزیشون رو فراوان بگردن تا شکرت به جای آورن امروز به برکت دعای ابراهیم دلها شیفته اونجاست انواع خوردنی ها نوشیدنی ها در اونجا فرابانه بدون اینکه قیمت ها تغییر بکنه این دعای ابراهیم بود مادر موسی علیه السلام که یقینش و توکلش و اصلا پذیر بود وقتی که دید فرعون همه پسران را از بین میبرد هر نوزاد پسر که به دنیا میاد سرستن جدا میکنه از درس این که دیده بود یک پسری نوزادی متولد میشه حکومتت را از دستت میگیره و تو را شکست میده وقتی که پسرش به دنیا آمد بیمناک بود که چه کار بکنه؟ شاید پسرش به سرنوشت پسران دیگر گرفتار باشه؟ خیلی پسر خودش را دوست داشت مانند دیگران و اراده خدا چی بود؟ او حینا الى ام موسا بدله امم موسا افکندیم، برو بروشیرش بده فاذا خفت علیه وقتی برو ترسی برو ترسیدی که ها او را کش کنند و شناسایی بکنن، فعلقیه فلیم در دریا بیاندازش داشتش بلاد خاکی ترس نکنند و کین نباش. را دوهو الیک ما این نوزاد را به خودت برمی و جا علوه من المرسلین و او را پیامبر برمی یقین مادر موسی و توکلش بر خدا باعث شد که فرزندش را در تابوتی گذاشت و به دریا افکند فرعونی ها اون را برداشتن بردن بردند کاخ فرعون زن فرعون با دیدن این فرزند علاق من شد به او. به فرعون گفت که ما فرزند نداریم این را به عنوان فرزند خودمون تربیت میکنیم این را به عنوان فرزند خودمون تربیت میکنیم و همینطور شد خداوند متعال سرسخترین دشمنش را مسخر کرد که از موسی موازبت کنند تا این که موسا ادعای پیامبری کرد وقتی موسی ادعای پیامبری کرد فرعون ها با همه حشم و همراهانش برای دستگیری موسا و از بین بردن موسا بسیج شدن حضرت موسا دستور داد به اطرافیانش به مؤمنانی که با او بودند، به تعدادشون زیاد نبود گفت از اینجا برویم فرار کنیم حرکت کردن تا رسیدن به کنار ساحل این طلب جلوشون دریاست. پشت سرشون نگاه کردن دیدن که لشکر فرعون در حال آمدن هستند با شتاب قال اصحاب موسی این نال مدرکون اصحاب موسی گفتن ما دیگه به آخر خط رسیدیم دیگه تمام شد یک طرف ما دریا یک طرف ما لشکر فرعون دیگه راه نجات نداریم ما دیگه ما تسلیم اما حضرت موسی نبی علیه السلام در عوج ایمان به خدا و یقینه طال کلا فرگست ما به آخر خط نرسیدیم این فکر رکنید چرا که اینمعی ربی سیه دین سوره شعر هست همان با من پروردگار من هست او ما راه به ما میده او راه به ما میده و خداوند مطالب موسا دستور دار انقرب بعصا کلبحر با عصای خود دریا را بشکاف. در با عصا در... به دریا زرد دریا بدونیم شد نیل بدونیم شد حرکت کرد سالم بدون هیچ آسیبی خودش و اطرافیان و اصحابش از این نیل عبور کردند خاص دوباره بزن عصایش که دریا به حال خودش برگرده تا اونها نتوانند تعقیبشون بکنند خداوند فرمود پترو کل بحر رهوا دریا را به حال خودش بگذار تو کاری به این نداشته باش کاری به این نداشته باش تو کار خودت انجام بده بگذارین دریا دونیمه فرعونی ها که اومدن دیدن که دریا دونیمه فرعون به اطرافیانش گفت که این دریا برای ما و شما دونیمه شده یالا بب... بپردازین حرکت بکنیم تعقیبشون بکنیم وسط که رسیدن دریا دوباره سر به هم آورد همشون غرق شدن فراونی ها غرق شدن بوسا و همه اطرافیانش نجات پیدا کردن این نتیجه چی بود؟ نتیجه ایمان به خدا نمونه های خیلی فراوانی داره از ایمان و توکل که انشالله در خطبه های آینده خدمت شما عرض می کنم و بنا لتز قلوبنا بعدی حدیتنا و من الذين که رحمه اینکا انت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المُوسِلين والحمد.